او فرزندی ترک شده بود، یک فرزند خونده دوردانه، یک قاتل، بعد چوپانی فروتن. با این حال کتاب مقدس از او به عنوان یکی از بزرگترین مردان خدا یاد میکنه. عزیزان، سلام و به دانشکده کوچکی کتاب مقدس خوش اومدین. باعث خوشحالی ماست که شما هر هفته وفادارانه به کلاسهای ما ملحق میشین. و در مطالعه مهمترین چیزی که یک نفر میتونه مطالعه کنه کلام خدا با ما همراه هستیم. چه چیزی موسی رو از دیگر افراد زمان خودش مستثنا کرده؟ چرا او از صمیمیت بیمانند با خدا لذت میبره؟ چرا خدا از او برای نجات قوم خودش و انجام این همه معجزات استفاده میکنه؟ امروز در مطالعه کتاب مقدس معلم ما به ما کمک میکنه که پیروزی ها و مصیبت های زندگی موسی ها رو یاد بگیریم حالا با هم به معلممون و درس امروز گوش میدیم به یکی دیگر از کلاس کتاب مقدس خوش آمدید. ضمن بررسی مهمترین کتاب دنیا کتاب مقدس به کتاب اعداد رسیدیم جایی که فهمیدیم حقایقی هست که تمثیلی جالب و ترسناک هستند برای مثال در اعداد باب دوازده، متنی در مورد موسی هست که بسیار جالبه وقتی به کتاب اعداد رسیدیم از چیزی که کتاب اعداد درباره عظمت موسی میگه خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم آخرین باب کتاب تسنیه به ما میگه که موسی بی همتا بود و بزرگترین مرد خدا بود که تاکنون زندگی کرده بود کتاب اعداد در چندین جا به ما میگه که موسا چقدر خاص بوده و چه مرد بزرگی بوده برای مثال در باب دوازده های سه و پنج تا هشت ما این کلام را داریم و موسا مرد بسیار حلیم بود بیشتر از جمعی مردمان که بر روی زمینند. یکی از کلمات کتاب مقدس که خیلی برای مردم سوء تفاهم میشه کلمه فروتن هست. عیسی گفته خوشا به حال حلیمان این به این معنی نیست که انسانهای ضعیف برکت خاص یافته‌اند معنی فروتن و حلیم ضعیف نیست در کتاب مقدس کلمه حلیم به معنی رام هست عصب نر قدرتمندی رو در نظر بگیرید یک اسب قدرتمند وقتی اون اسب رام میشه یا اونطور که میگیم یک لگام به دهنش میزنید و افساری به سرش میبندید و زینی بر پشتش میذارید اون اسب ضعیف نیست اون حلیم هست این معنی حلیم در کتاب مقدسه ایسا گفت یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاد دل می میباشم عیسی از چه لحاظ حلیم بود عیسی از این لحاظ حلیم بود که همیشه اراده پدرش رو به جایی آورد او همیشه می میگفت من کارهایی رو می میکنم که پدرم رو خشنود کنم او تماماً یوغ اراده پدر رو پذیرفته بود که حلیم شده بود عیسی به ما گفته یوغ ما رو بر خود گیرید و حلیم باشید وقتی شاول ترسوسی تبدیل شد وقتی او به طرز غم در راه دمشق عیسی مسیح رو ملاقات کرد او گفت خداوندا تو کیستی؟ و بعد گفت خداوندا از من میخواهی چه کنم؟ اسم او از شاول به پولوس تغییر یافت. شاول یعنی شخص مقتدر، پولوس یعنی شخص کوچک یا هیچکس اون چیزی که برای شاول ترسوسی در راه دمشق اتفاق افتاد او را حلیم کرد. وقتی او گفت خداوندا از من میخواهی چه کنم او حلیم شد. معنی حلیم بودن چیه؟ وقتی ما تعریف کلمه حلیم رو درک کنیم اون وقت ما میتونیم تعریفی رو که از موسا شده درک کنیم وقتی که میگه موسا مرد بسیار حلیم بود بیشتر از جمعی مردمان که بر روی زمینه معنیش اینه که موسا زندگیش رو صرف شاگردی خدا کرده بود او میخواست که از خدا اطاعت کنه و اراده خدا رو به جا بیاره در باب دوازده از موسا تعریف شده وقتی دو نفر به موسا حسودی میکنن خدا از دفاع کرده. خدا گفته اگر در میان شما نبی باشد، من که یهوه هستم، خود را در رویا بر او ظاهر می کنم و در خواب با او سخن می گویم. اما بنده من موسا چنین نیست. او در تمامی خانه من امین است. با وی روبرو و آشکارا و نه در رمزها سخن می گویم. و شبیه خداوند را به چشم می بیند. پس چرا نترسیدید دید که بر بنده من موسا شکایت آوردید؟ اینجا ما جمعه وحشتناکی در مورد موسا به هارون میبینیم. خدا میاد و به اونها میگه البته به موسا تا به این قوم مرا اهانت نمایند و تا به با وجود همه آیاتی که در میان ایشان نمودم به من ایمان نیاورند. ایشان را به وبا مبتلا ساخته حلاک میکنم و از تو قوم بزرگ و عظیمتر از ایشان خواهم ساخت. ما در جلسه قبلی دیدیم که خدا قومی بیش از دو میلیون نفر رو فقط با دو نفر معاوضه کرد، کالی با یوشه. چون کالی با یوشه تماماً خدا رو پیروی کردند و به او ایمان داشتند. اینجا در این رویارویی خدا داشت می گفت اگرچان طور نشد. اما او مایل بود که تمام قوم رو با یک مرد معاوضه کنه، با موسی. او گفت من همه اونها رو در بیابون تسلیم مرک می کنم و از تو قومی خواهم ساخت شبیه تو. های خدا رو می بینید؟ خدا چنان ارزشی به این مرد حلیم داده چون که او مایل بود که اراده خدا را انجام بده. خدا گفت من مایلم که تو را با تمام اون قوم معاوضه کنم. فکر میکنم این بسیار جالبه. جالبه که رابطه سمیمی موسا را با خدا ببینیم. در کتاب خروج خدا به موسا گفت موسا جایی نزدیک من هست و تو میتونی در اون ساکن بشی. موسا تصمیم گرفت که اون جایی که میخواد باشه. موسا مایل بود اونجا ساکن بشه. موسی میخواست که نزدیک خدا باشه و او منحصراً نزدیک خدا بود. خیلی نزدیک و اونقدر برای خدا ارزشمند بود که خدا مایل بود او رو با تمام قوم موافزه کنه. این به نظر من جالبه. وقتی که به زندگی موسی نگاه میکنید جالبه که بدونید موسا وارد سرزمین وعده نشود. در آخر خدا کل قوم رو با موسا موافزه نکرد چون موسی برای قوم اسرائیل دعا و شفاعت کرد. و حتی از خدا خواست که جان او را بگیره اما قومش را حفظ کنه گناه موسا در باب بیست یکی از رازهای کتاب اعداد هست. گاهی ما فکر می‌کنیم که خدا عادل نیست و این یکی از جاهایی که بسیاری از مردم فکر می‌کنند خدا یا این عادلانه نیست وقتی میفهمید که موسا چه مرد بزرگی بود و ظاهرا کار کوچکی کرد حیرت می‌کنید که چرا خدا او را تنبیه کرد و به او گفت که نمیتونی وارد سرزمین وعده بشی این ثبت شده که و خداوند موسا را خطاب کرده گفت اصار را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده در نظر ایشان به این سخره بگویید که آب خود را بدهد. پس آب را برای ایشان از سخره بیرون آورده جماعت و بهای ایشان را خواهی نوشانید. پس موسی اصار را از حضور خداوند چنان که او را فرموده بود گرفت و موسا و هارون جماعت را پیش سخره جمع کردن و به ایشان گفت ای مفسدان بشنوید. آیا از این سخره برای شما آب بیرون آوریم و موسا دست خود را بلند کرده و سخره را دو مرتبه با اصهای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بهایم ایشان نوشیدن. بعد خداوند به موسا و هارون گفت چون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بنی اسرائیل تقدیس نمایید لحاظا شما این جماعت را به زمینی که به ایشان داده ام داخل نخواهید سا. ما به این واقعه به عنوان گناه موسی اشاره می کنیم آیا تعجب آور نیست که این مرد فقط یک بار گناه کرد اون هم گناهی که به نظر ما کوچک میاد مخصوصا وقتی شما به گناهان مردمی که موسی اونها را هدایت می کرد فکر بکنید وقتی به صبوری او در بیابان به مدت چهل سال فکر بکنید چه چیزهایی رو تحمل کرد و بعد به خاطر اینکه ظاهرا یک بار کنترلش از دست داد خدا گفت دیگه کافیه موسی تو وارد سرزمین وعده نخواهی شد. به نظر ما تنبیه خیلی سختی میاد. دو تا دیدگاه هست که وقتی به شدت تنبیه خدا نگاه می کنیم باید روی اونها تاکید کنیم. اولا باید اینو بگیم آیا تمام زمین را به درستی داوری نخواهد کرد؟ ما کی هستیم که به خدا بگیم چی عادلانه هست یا چی درسته؟ ما حق نداریم که به خدا نظر بدیم که چی عادلانه هست یا چی عادلانه نیست خدا تنها کسیه که تعیین میکنه چی عادلانه هست و یا چی درسته من فکر میکنم جالبه که ما به این نکته باریک توجه کنیم که موسی هرگز به تنبیه خودش اعتراض نکرد در کتاب تسنیه تنها چیزی که میگه اینه که موسا روزی راجع به این با خدا سخن گفت و خدا گفت دیگه راجع به این مطلب با من سخن نگو و موسا دیگه هرگز اونو مطرح نکرد موسی شکایت نکرد و نگفت که نا یا ناحقه فکر می کنم مسئله دیگه که ما باید اینجا درباره این واقعه درک کنیم اینه که خدا معیارهای بالاتری برای رهبران نسبت به قوم خودش داره هرگز اینو فراموش نکنید مخصوصا اگه یک رهبر هستی به اعتقاد من کتاب مقدس اینو برای ما به وضوح باز کرده که برای شما میار مضاعفی داره وقتی شما عضو کلیسا میشید به اعتقاد من میارهای خاصی هست که باید رایت کنید معیارهای قطعی که باید مراعات کنید کلیساهایی که معیارهای قطعی برای اعضاشون ندارند تعدادشون زیاد نیست شما باید از اعضای کلیسا چیزی انتظار داشته باشید اما کلیسا به قول کتاب مقدس باید از رهبرانش انتظارهای بیشتری نسبت به اعضا داشته باشه به اعتقاد من خدا رهبری رو خیلی جدی میگیره ما در کتاب لاویان دیدیم که موسا در مقام رهبری بود و چیزی که برای دیگران گناه کوچکی محسوب میشه، به خاطر شخصیت و موقعیتی که خدا او رو در اون قرار داده بود، گناه کوچکی محسوب نمیشه. آشکاره که گناه او چیزی مثل این بود. اولا خدا گفت اونجا با صخره حرف بزن، او با صخره حرف نزد. او دو بار با اسا صخره رو زد. اون نطاعتی بود. خدا گفت با صخره حرف بزن، او صخره رو زد، نه یک بار بلکه دو بار. معلوم بود که موسا کنترلش رو از دست داده. موسا گفت ای مفسدان بشنوید آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟ معلوم بود که او عصبانی بود. خدا موسا را به گناه دیگری متهم کرد. خدا گفت تو به من باور نکردی. من مطمئن نیستم که منظورش چی بود. اما خدا همینطور گفت. تو منو در مقابل مردم تقدیس و احترام نکردی. من فکر می کنم که این بر جدی بودن گناه موسا تحکید میکنه. یاد داشته باشید که وقتی خدا به موسا این چهار راز روحانی رو یاد داد که تو نجات دهنده نیستی موسا بلکه من هستم و من با تو هستم. تو نمیتونی کسی رو نجات بدی اما من میتونم و من با تو هستم. این چیزی نیست که تو بخوای موسا، چیزیه که من میخوام و من با تو هستم. و بعد وقتی واقع شد تو اون رو انجام ندادی موسا، من اون رو انجام دادم چون من با تو بودم. خدا این درسها رو به موسا داد اشتباه جدی که موسی اینجا کرد این بود که گفت آیا از این صخره برای شما آب بیرون آورم موسی خدا رو در برابر اونها تقدیس نکرد برای مردم روشن نکرد که این خداست که این معجزه رو انجام میده موسی معجزه رو به حساب خودش گذاشت این جدی ترین بخش گناه موسا بود تنها راهی که میتونیم این را از دیدگاه خدا ببینیم اینه که بفهمیم خدا معیارهایی قرار داده که فقط خودشونها رو میدونه. او بعضی از این معیارها رو با ما در میون میذاره اما یادتون باشه که این خداست که ما رو در عدالت راهنمایی میکنه. ما خدا رو راهنمایی نمیکنیم. آشکار بود که داوری با معیارهای خدا و تنبیه موسی عادلانه و درست بود. معلومه که موسا با خدا موافق بود. درس بزرگی اینجا برای ما هست. ما نباید کاری رو که خدا میکنه به حساب خودمون بذاریم. در باب یازده کتاب اعداد واقعی دیگری در مورد موسی هست که به نظر من بسیار جالبه. ما این روزها راجع به تجربه ای می میشنویم که بهش خستگی میگیم. خستگی هست، فرسودگی هست، در هم شکستن هست. و کلمات زیادی که وقتی مردم طاقتشون تموم میشه از اونا استفاده میکنن. مردان بزرگ زیادی در کتاب مقدس هستند. مردانی مثل داوود که کتاب مقدس دربارهش میگه او مردی بود که قلبی خدا جو داشت. موسا بود که کتاب مقدس میگه موسا حلیمترین مرد روی زمین بود و بزرگترین مرد خدا بود. این توجه منو جلب کرد که این مردان خدا خسته شدن. این مردان طاقتشون تموم شد. این مردان به ما سرمعش خواهی میدن از چیزی که بهش خستگی یا درماندگی میگیم. برای مثال موسا به خداوند گفت چرا به بندی خود بدی نمودی؟ چرا بار جمعی این قوم را بر من نهادی؟ آیا من ایشان را زای آیا من پدر آنها هستم که به من میگوی ایشان را در آغوش خود بردار و به زمینی که برای ایشان قسم خوردی مثل لالا که تپل شیرخوره را برمیدارد؟ گوشت از کجا پیدا کنم تا به همه این قوم بدهم زیرا نزد من گریان شده میگوین ما را گوشت بده تا بخوریم من به تنهایی نمیتونم تحمل تمامی این قوم رو بکنم زیرا بر من زیاد سنگین است اگر با من چنین رفتار نمایی پس هر گاه در نظر تو التفات یافتم مرا کشته نابود ساز تا بدبختی را نبینم آیا تا حالا چون این احساسی داشتی؟ من در کتاب مقدس دیدم که موسی، ایلیا، یعقوب، داوود، یوهننای رسول و بسیاری از مردان بزرگ دیگر خدا اونقدر خسته شدند که همه این همون دعا رو کردن خدایا مرا بکش، من میخوام بمیرم آیا تا حالا آرزو مرگ کردی؟ تا حالا اونقدر افسرده شدید که آرزو کنید که بتونید بمیرید به اعتقاد من این تجربه برای خیلی از مردم اتفاق میفته و معتقدن که میتونه برای مردم خداترس هم پیش بیاد چون که کتاب مقدس به ما میگه برای بزرگترین مردان خدا هم پیش اومده اونا اونقدر خسته شدن که از خداوند خواستند که جان اونها رو بگیره جالبه که خدا به این دعا جواب نمیده آیا تا حالا از خدا برای دعایی که جواب نداده تشکر کردید سرودی هست به نام روح خدا بر قلب من فرو دای. اون سرود میگه به من یاد بده که برای دعاهای اجابت نشده صبور باشم میدونم کسانی هستن که این رو دوست ندارن چون اونا میگن چیزی به نام دعای اجابت نشده نداریم خب من فکر میکنم داریم با فیض خدا دعاهای بی جواب هم هست ما اغلب نمیدونیم اراده خدا چیه و گاهی اوقات چیزهای اشتباهی رو میطلبیم و چون خدا ما رو دوست داره او به دعاهای ما که در راستای اراده اون نیست جواب نمیده به این دلیلی که در نمونه دعای عیسی او به ما یاد میده که اینطور دعا کنیم اراده تو آنچنان که در آسمان هست بر زمین نیز کرده شود اگر بر اساس اراده خدا دعا کنید اگر چیزی که خواستید اراده خدا نیست پس نمیخواهید که خدا اون رو به شما بده وقتی مردان خدا خیلی خسته میشن خیلی فرسوده میشن از خدا چیزای اشتباه میخوان از خدا میخوان که اونها رو بکشه چون که های اونها با خدا هست، خدا چیزهای درست رو به اونها میده، نه چیزی رو که طلب میکنن. در باب هشتم رومیان، پولس رسول به ما یکی از عمیق‌ترین متن‌های کتاب مقدس رو میده. او گفته ما نباید بیش از آنچه که لازمه دعا کنیم، چون ما نمیدونیم که چگونه دعا کنیم و نمیدونیم که اراده خدا چیه. میدونیم که اگر بر حسب اراده خدا دعا کنیم، آن چیزی که درخواست کرده ایم دریافت میکنیم. اما مشکل ما اینه که اغلب کلیدی نداریم و حتی کوچکترین آگاهی از اراده خدا نداریم. پس ما آنطور که شایسته است دعا نمی کنیم. پولوس در رومیان 8، 26 تا 28 گفته اجازه ندید که اون مانع دعا کردن شما بشه. به گفته پولوس حال باید دعا کنید حتی اگر برای چیزهای غلط دعا می کنید. چون وقتی شما چیزهای اشتباه درخواست می کنید، اگر قلب شما با خداست روح قدوس خدا که در شما هست و اراده خدا رو میدونه برای شما بر حسب اراده خدا شفاعت میکنه. اون موقع خدا اون چیزی که ارادهش برای شما هست به شما میده. به عبارت دیگه اگر چیز اشتباه به طلبید، اگر قلب شما با خداست، خدا چیزهای درست به شما میده. حتی اگه ندونید اون چی هست. قدر مسلم اینه که اگر قلب شما با خداست، شما نمیبازید. حتی اگر بگید خدایا منو بکش من فقط میخوام بمیرم من خیلی افسردم، خدا شما رو نمیکشه، بلکه اون چیزی که نیاز واقعی شما هست به شما میده در مورد موسی به او هفتاد نفر داد که کمک او باشند خدا گفت و فکر میکنی همه این کارها رو خودت میکنی؟ بذار چیزی بهت بگم موسا. این یک ورزش تیمیه و تو بهتر اعضای بیشتری در تیمت داشته باشی که به تو کمک کنند تو به تنهایی نمیتونی این کار رو بکنی هفتاد نفر رو انتخاب کن و اونها رو نزد خیمه بیار و من رو هم رو همچنان که بر تو قرار دادم بر اونها هم قرار خواهم داد. این به این معنی نبود که خدا رهبری رو از موسا گرفت، بلکه مفهومش این بود که خدا مسئولیت رهبری رو بین هفتاد نفر دیگه تقسیم کرد به موسا گفت که مسئولیتش رو با دیگران تقسیم کنه. او هفتاد نفر دیگر رو م کرد. این پیشنهاد رو پدرزن موسا یترون در خروج باب به کرد. پیداست که موسا وقتی در این مرحله خدا به اون نشون داد که این اراده خداست اون رو اجرا کرد نه به خاطر فکر خوب و اراده پدرزنش پدرزنش جز انتخاب شده ها نبود وقتی ایلیا دعا کرد که بتونه بمیره خدا اینگونه گونه به او جواب داد خدا به ایلیا گفت تو از مرمت معبد یا بدنت قفلت کردی حالا اینجا دراز بکش و بخواب پس خدا خوابی گران بر او مستولی کرد و بعد خدا در میانه خواب عمیق او رو بیدار کرد و گفت چیزی بخور قضا به طور خارق العاده شده بود و ایلیا خورد حالا برگرد و بخواب وقتی ایلیا از خواب دوم برخاست کتاب مقدس میگه که ایلیا چهل روز با قوت اون گوشت زندگی میکرد اگه در اول پادشاهان 18 نگاه کنید میبینید ایلیا وقتی که با انبیای بل در کشمکش بود با تمام کارهایی که کرد از نظر جسمی کاملا خسته شد وقتی ایلیا دعا کرد که بمیره خدا گفت تو نیاز به مردن نداری ایلیا فقط کافیه یک کمی استراحت کنی. لازمه که چیزی بخوری. تو از معبد از بدنت قفلت کرده ای. تو از نگهداری بدنت قفلت کرده ای. خدای لیا رو نکشت. همون چیز برای یعقوب، یونس و داوود هم اتفاق افتاد. به نظر من جالبه که وقتی این مردان خسته و درمانده هستند و به جایی میرسند که نیاز به تجدید قوا دارند وقتی نیاز به تازگی دارند چیزی که بهش احیا میگیم عملا خدا اونها رو در مسیر تجدید قواه هدایت میکنه. یکی از بزرگترین آیات در مورد تجدید قواه در کل کتاب مقدس در مزمور 23-3 هست. جایی که داود گفته جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود در راه های ادالت هدایتم می کند. وقتی که من به خاطر غفلت از بدنم و یا روهم خسته میشم لازمه که تقویت بشم. در اعداد 11 موسا خسته شده و به حضور خدا آمده. خدا گفت باید به روحت استراحت بدی. بذار بگم چطور این کار رو بکنی. من راه های ادالت رو به تو نشون خواهم داد و از تو میخوام که بیای و در این راه های ادالت گام برداری. شاید سه سال، شاید پنج سال راه های روح تو رو تازه خواهد کرد. این کاریه که خدا برای احیای قومش که هسته هستن میکنه. این مثل یک دسر فوری، چای فوری، قهوه فوری یا استراحت فوری یا تجدید قوای آنی نیست. ما در دنیای سرعت زندگی می کنیم. ما همه چیز رو فوری می خوایم. خدا چیزهای فوری به ما نمی ده. شاید بعضی چیزها رو فوری بده اما تجدید قوایی که در تجربیات موسی می بینیم خیلی خیلی عملیه. خدا گفت بذار به تو راههای درست رو نشون بدم که جان تو رو تازه میکنه کنه. هفتاد نفر انتخاب کن تا کمکت باشن. بارها رو تقسیم کن. بیاید کمی در اطرافمون سازماندهی کنیم. بیاید به عده‌ای وکالت بدیم و بعضی چیزها رو به دیگران بسپاریم. این خیلی عملیه. درست مثل فرمانی که برای ایلیا عملی بود. این توجه منو جلب کرد وقتی فکر کردم مردی به بزرگی موسی میتونه گناه کنه و مردی به بزرگی موسی میتونه خسته بشه، من عبرت بزرگی از اون گرفتم. من شما رو نمیدونم، اما وقتی که نفس انسانی در این شخصیت‌های کتاب مقدسی ظاهر میشه، این برای من عبرت بزرگیه این منو دلگرم میکنه چون که وقتی من نفس انسانی اونها رو میبینم میفهمم که نفس انسانی من اصلا برام یه فاجعه نیست بسیاری فکر میکنند که شما وقتی مسیحی شدید دیگه انسان نیستید به نظر میرسه که خیلی فکر میکنند که چون که اونها روحانی هستن دیگه مرد یا زن نخواهند بود این واقع گرایانه نیست خیلی واقع گرایانه و اطمینان بخش هست که میبینیم نفس انسانی در این شخصیت‌های کتاب مقدسی هم دیده میشه اینها شخصیت‌های اساطیری نیستند اونها شخصیت‌های واقعی مثل من و شما هستند اونها همون نفس انسانی رو داشتند که من و شما داریم اما نفس انسانی اونها با روح خدا کنترل میشد و به این دلیل بود که اونها میتونستند اون کارهای عظیم رو بکنن مایلم که توجهتون رو به یه چیز دیگه در کتاب احداد جلب کنم ما در باب 22 داستان الاق نبی رو داریم خدا میخواد اینجا کاری انجام بده اما نمیتونه کسی رو پیدا کنه که او رو ببینه خدا میخواد پیغامی بده و نمیتونست کسی رو پیدا کنه که با او صحبت کنه. پس خدا اق کوچکی رو پیدا کرد که میتونست او رو ببینه و توسط اون میتونست صحبت کنه. الاق کوچک بلآ. وقتی من دانشکده کتاب مقدس رو شروع کردم، مشکلات الهیاتی خیلی وحشتناکی داشتم. من یک علامت سوال داشتم که نمیتونستم بفهمم، و به الهام کتاب مقدس شک داشتم. یکی از مشکلات بزرگ من این داستان کوچک در بیست 22 دو بود. به دلایلی من بر روی این داستان کوچک تمرکز کرده بودم. در دانشکدهای خیلی سنتی از استادان سوال می کردم آیا باید خدا از طریق یک الاغ صحبت کنه که نجات پیدا کنیم؟ نمیدونم چرا روی اون سوال تمرکز کرده بودم. اما اونها برای من جلسات دعا گذاشتن و خیلی مراقب من بودند چون این سوال رو کرده بودم. حقیقتا من فکر کردم اون سوال خیلی با ارزشیه آیا ما به خاطر دیدگاه دیدگاهمون درباره الهام کتاب مقدس نجات پیدا می کنیم؟ یا به خاطر ایمان به انجیل عیسی مسیح این واقعا سوال من بود اما اون رو روی این علاق کوچک متمرکز کرده بودم برای من سخت بود که باور کنم خدا میتونه از طریق یک علاق صحبت کنه تا حالا دیدید که علاق صحبت کنه اگه شنیدید شنیدید که اونها در روستاها هرعر میکنن فقط سر و صدا میکنن اگه واقعا بدونید یه علاغ چه شکلیه زیاد خوشایند نیست که کسی رو علاغ خطاب کنید این بود که ایمان من به چالش کشیده شد نمیتونستم باور کنم خدا میتونه از طریق اون صحبت کنه خب بعدها من به همراه یک کشیش در یک مهمانی هتل داران حضور داشتم اونجا یه شهرک توریستی بود و منبع درآمد اساسی اونها از مهمان خانه ها و هتل داران بود از من خواستند که در ابتدای این مهمانی دعا کنم یک خادم گاهی در چنین هایی قرار می گیره. من دعا کردم و بعد مهمانی تبدیل به یک محفل شوخی و خنده شد گرداننده مجلس جوک‌های رکیکی می‌گفت هر بار که یکی از این جوک‌ها گفته می‌شد هر کسی نگاه می‌کرد که ببینه کشیش در مورد اون چی فکر می‌کنه من مونده بودم که چه واکنشی نشون بدم اونا میدونستند که من هم یک خادم هستم باید می‌خندیدم احساس خوبی نداشتم باید خیلی عصبانی به نظر می‌رسیدم و از داستان‌هایی که گفته می‌شد ناراحت می‌شدم چه واکنشی باید نشون بدم؟ بعد این فکر به نظرم رسید که از خودم بپرسم عیسی با این موضوع چه برخوردی می‌کرد توی کتاب مقدس خوندیم که عیسی بارها در محفلهایی مثل این حضور داشته عیسی به مهمانی و عموم و گناهکاران میرفت. این اشاره بر اون داره که عیسی مخالف مهمانی اجتماعات و جشن‌ها نبود مردم از حضور عیسی لذت می‌بردند من اونجا در مخمسه مونده بودم و فکر میکردم عیسی با این چه برخوردی میکرد؟ خداوندا تو چیکار میکردی؟ بعد برای من مکاشفه شد که عیسی آنها را محبت میکرد. بعد این سوال برام پیش اومد که آیا واقعا این آدمها رو دوست دارم؟ نمیدونستم که اونها میدونند که من اونها رو دوست دارم. من پشت میزی کنار مردی نشسته بودم که شهردار شهر بود. شهردار مس بود و به نظر می‌رسید اون شب خیلی الکل نوشیده بود. ما صحبت مفصلی با هم کردیم اما جلوتر می جلوتر میرفتیم شهرتار مستر می میشد و برام این سوال پیش اومد که آیا واقعا او رو دوست دارم و آیا او میدونه که او رو دوست دارم بعد شروع کردم به دعا کردن خدایا به من اونقدر جسارت بده که بتونم به این مرد نشون بدم که واقعا او رو دوست دارم او و کشیش تقریبا کنار هم نشسته بودند در اون لحظه شهردار به سوی کشیش برگشت و گفت کشیش من نصیحتی برای تو دارم وقتی وارد سیاست شدم یه نفر اینو به من گفت مردم رو اونطور که میبینی خطاب نکن، اونطوری که هستند خطاب کن. کشیش گفت آقای شرطال من واقعا از شما قدردانی میکنم، این واقعا نصیحت خوبی بود. راستش اونقدر از این نصیحت خوشم اومد که فکر میکنم یک موعظه برای اون ترتیب بدم. مردم رو اونطور که میبینی خطاب نکن، اونطوری که هستند خطاب کن. چون که گاهی ما طوریه که ما رو فریب میده. شهردار گوه اگه برای این موضوع موعظه بکنی من توی کلیسات خواهم بود که گوش کنم به منشی من بگو که که این رو خواهی کرد و من خواهم اومد. من از اینکه او این حرف رو زد تحت تاثیر قرار گرفتم بعد فکری به نظرم رسید و به طرف شهردار برگشتم و گفتم میدونید آقای شهردار، شما امشب یکی از مشکلات بزرگ الهیاتی منو حل کردید. او گفت چطور مگه؟ گفتم خب وقتی من توی دانشکده بودم این مشکل رو داشتم که نمیتونستم باور کنم که، خدا میتونه توسط یه الاق صحبت کنه اما من کاملا مطمئنم که خدا توسط شما با من حرف زد شما مشکل بزرگ منو حل کردی شهردار فکر نمی‌کرد که این مسئله بزرگی باشه فکر کرد که خیلی مسخه او قول داد که وقتی کشیشو موعظه می‌کنه خواهد اومد و اومد عنوان موعظه این بود مردم رو واقعا همونطوری که هستند خطاب کن ایمان دارم که من اون شب مکاشفه ای داشتم که بر اعداد 22 و شهردار شهر متمرکز بود. مکاشفه واقعا این بود. ما این عقیده را از کجا پیدا کردیم که خدا فقط از طریق مقدسین برجسته حرف میزنه و خدا کارهای فوق‌العاده رو فقط از طریق افراد فوق‌العاده می‌کنه چون که اونها مقدسین برجسته ای هستند. همونطور که گفتیم اگه به معموریت موسی به عنوان یک افسانه نگاه کنیم این درست نیست. خدا میخواد کار خارغعاده ای از طریق اشخاص عادی انجام بده چون که اونها در دسترس هستند به اعتقاد من ما به اشخاصی نیاز داریم که خودشون رو واقعا در اختیار خدا قرار میدن به عنوان یک شبان من توی کلیسا متوجه شدم که گاهی کسانی هستند که قابلیت های بسیار اندکی دارند اما خیلی در دسترس هستند اما برعکس گاهی کسانی هم هستند که قابلیت های زیادی دارند اما خیلی کم در اختیار خدا هستند ی افرادی با عطایا و با مهارت هستند اما نمیتونید پنج دقیقه از وقت اونها رو بگیرید. به اعتقاد من این مهم نیست که ما قابلیت مهمی داریم یا نه، مهمترین چیز اینه که ما در دسترس باشیم. در زندگی مسیحی مهمترین قابلیت در دسترس بودنه. این چیزیه که واقعا خدا میخواد. اگه این واقعیت داره که این خداست که کارها را انجام میده و این ما نیستیم که کارها را انجام میدیم که واقعیت هم داره، پس مهمترین چیز که ما میتونیم به خدا تقدیم کنیم اینه که در اختیار او باشیم تا از ما استفاده کنه. در کتاب اعداد وقتی ما عظمت موسا رو میبینیم و بعد خستگی و گناه موسا رو میبینیم بعد میفهمیم که همونطور که خدا از اون اولاغ کوچک استفاده کرد از موسا هم استفاده کرد. چون موسا در اختیار خدا بود. خدا میخواد و از من و شما هم استفاده خواهد کرد به شرط اینکه در اختیار او باشیم. آیا خودتون رو در اختیار خدا گذاشتید؟ اگه تا حالا نذاشتید، امروز این کار رو بکنید. دوستان امروز چه حقیقت حیرتنگی زیاد گرفتیم. امیدوارم که درس امروز شما رو تشویق کرده باشه. لازم نیست که مقدسی برجسته باشید که خدا از شما استفاده کنه. فقط کافیه که بخواید و در اختیار اون باشین. خوشحالیم که همیشه به ما ملحق میشین. خوشحالم که تصمیم گرفتید کتاب مقدس رو با ما مطالعه کنید. همچنین از دعاهای شما برای این برنامه قدردانی کنیم. جلسه بعدی همراه ما باشین و از دوستانتون دعوت کنید که در مطالعه کلام خدا به ما بپیوندن. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار خداوند ما، عیسی مسیح به شما برکت بده و شما رو در دستان مهربانش حفز کنه